بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بی اندازه مهربان نهایت بارش هنگامی که آسمان شگاه ده شوان هنگامی که ستارگان پراغنده شوان هنگامی که بحرها منفجر شوان و هنگامی که قبرها گوشوده شوان در آن فرصت است که هر کس می داند که چی چیز را از پیش فرستاده و چی را باز داشته است ای انسان چی چیز تو را از پروردگار صاحب کرم تو فریفت او که تو را آفرید و باز تو را به شکل بسیار خوب برابر ساخت و در نهایت اعتدال قرار داد به همان صورتی که خواست اجزای وجود تو را به هم پیوست سا. خیر، چنین نیست که شما می پندارید بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید واقعیت این است که بر شما نگهبانانی گماشته شده اند نویسندگان گرامی قدری که همه کارهای را که انجام می دهید می دانند مسلمان نیکوکاران آن در بهشتند و بگمان بدکاران در دوزخند که به آن داخل می شوند روز جزا و از آن غایب نیستند چی میدانی که روز جزا چیست؟ و باز چی میدانی که روز جزا چیست؟ روزی است که هیچ کس برای کسی دیگری چیزی کردن نمی تواند و در آن روز کار سراسر از آن خداست.